در های بسیار قدیم دو برادر بودند. یکی خیلی ثروتمند بود و دیگری خیلی فقیر. روزی دو برادر با هم روبرو شدند و بنای صحبت را گذاشتند. برادر فقیر گفت: چقدر زندگی تلخه. ولی آدم عاقل کسیه که با درستی و پاکی زندگی کنه. برادر ثروتمند در جواب گفت: گفتی درستی و پاکی کجا میشه اونا به دست آورد؟ درستی وجود خارجی نداره. نادرستی جای همه چیزو گرفته. برادر فقیر حرفش حرفشو تصدیق کرد و گفت: ولی برادر، پاکی و درستی از همه چیز بهتره. برادر ثروتمند گفت: حالا که اینطوره بیا با هم شرط ببندیم و این موضوع رو از دیگران بپرسیم. با سه نفر که روبرو شدیم ازشون سوال میپرسیم. اگه اونا با تو هم عقیده بودن، ثروت من مال تو. اگه حرف منو قبول کردن، سرمایه و هستی تو مال من. برادر فقیر جواب داد بسیار خوب قبول دارم اونا به راه افتادند در وسط راه با مردی روبرو شدند که حقوق خودشو تازه گرفته بود بنابراین ازش پرسیدند سلام آقای محترم میخواستیم ازتون چیزی بپرسیم اشکالی نداره بپرسید راستش ما میخواستیم بدونیم راستی بهتره یا نادرستی اون مرد جواب داد اوه ای مردان شجاع راستی و پاکی کجا وجود داره من خیلی کار کردم خیلی زحمت کشیدم ولی تا کنون چیزی گیرم نیمده و حقوقی که بهم به میدم خیلی ناچیزه صاحب کارم حق منو از بین برده این عمل رو راستی و پاکی میگن باید دنبال ناراستی رفت چون نادرستی از راستی به مراتب بهتره برادر ثروتمند گفت برادرم همانطور که میبینی در اینجا حق با منه اما برادر فقیر ناراحت شد باز به راه خودشون ادامه دادند و با تاجری روبرو شدند و گفتند سلام ای تاجر ثروتمند سلام ما میخواستیم چیزی از شما سوال کنیم بسیار خوب بفرمایید، میخواستیم بدونیم راستی بهتره یا نادرستی تاجر جواب داد ای مردان شجا مگه میشه با راستی و پاکی زندگی کرد؟ اگه وجودت رو در راه راستی و درستی از دست بدی تنها خودت گول زدی در غیر این صورت همه چیز داری. این حرف رو زد و به راه خودش ادامه داد برادر سربتمند جواب داد این من برنده شدم برادر فقیر باز ناامید شد اونا راه خودشون ادامه دادند خیلی راه رفتند تا با یه نجیب زاده روبرو شدند گفتند ارباب حال شما چطوره؟ متشکرم بد نیستم ما مطلبی داشتیم که میخواستیم ازتون بپرسیم بفرمایید میخواستیم بدونیم راستی بهتره یا نادرستی؟ ه ای مردان شجا. درستی و شرافت کجا پیدا میشه؟ به علاوه بی فایده است اگه من با شرافت زندگی میکردم. اون وقت حرفش را ناتمام گذاشت و به راه افتاد برادر ثروتمند اظهار داشت برادر حالا باید به خونت برگردی و هرچی داری و نداری در اختیار من بگذاری برادر فقیر به خونش برگشت و بر اثر غصب و ناراحتی از حال رفت برادر ثروتمند اونچه رو که مال برادر فقیر بود برداشت از کلبش خارج شد و گفت: فعلا تو میتونی تو این کلبه بمونی ولی بدون که این کلبه هم مال منه و بعد از مدتی باید اونو به من تحویل بدی و به جای دیگه ای بدی. مرد فقیر با خونواده غم خود در اونجا موند حتی نونم تو خونه نداشتن تا شکمشونو سیر کنن کار هم پیدا نمیشد. اون سال سال بدی بود مرد فقیر خیلی رنج برد. بچه هاش گریه می کردند. ناچار پیشه برادرش رفت و گفت برادر می کمی آرد به ما بدی؟ ما در خونه چیزی برای خوردن نداریم. بچه هم شکمشون بر اثر گرسنگی بالا اومده. برادرش گفت اگه می خوای بهت آرد بدم باید یه چشم تو رو در بیارم. مرد فقیر خیلی فکر کرد. به ناچار راضی شد و گفت بسیار خوب، تو میتونی یه چشم منو در بیاری اما تو رو خدا یه چیزی به ما بده تا بخوریم برادر ثروتمند یک چشم برادرش رو درآورد. در عوض مقداری آرد فاسد بهش داد برادر فقیر اون گرفت و به خونه رفت وقتی زنش او رو با اون حال دید جیغ سختی کشید و پرسید چه بلایی به سرت اومده چشمت چی شده اون مرد جواب داد برادرم اونو رو درآورده بعد تمام جریان رو براش شر داد و همه اونا گریه کردند و ناراحت شدند. ناچار آرد رو پختند و مشغول خوردن شدند. بعد از مدتی یه هفته نشد که آرد تموم شد. مرد فقیر زرفی برداشت و دوباره پیش برادرش اومد و تقاضای آرد کرد. برادرش گفت اگه میخوای بهت آرد بدم باید اون چشم دیگه هم در بیارم. اون وقت برادر چطور میتونم بدون چشم تو این دنیا زندگی کنم تو که یه چشم منو درآوردی رحم داشته باش حالا بدون اینکه چیزی از من بخوای کمی آرد بده نه به هیچ فش من چیزی نمیتونم بهت بدم اگه مایلی بذار یه چشم تو رو هم در بیارم بعد بهت آرد میدم مرد بیچاره قبول کرد و گفت بسیار خب چشم منو در بیار اما خدا به تو رحم کنه مرد ثروتمند چاقویی برداشت و چشم برادرش رو در آورد در عوض مقداری آرد بهش داد مرد فقیرم اونو گرفت و به خونش آمد به قدری ناراحت بود که اندازه نداشت و آرد را حمل کرد و به منزل رسید وقتی زنش او رو با اون حال دید ناگهان فریاد زد و گفت ای بدبخت کور بدون چشم چطوری میتونی زندگی کنی ممکن بود که آرد رو بتونیم از روی دیگه تهیه کنیم ولی حالا زنش به قدری گریست که از حال رفت و نتونست بیشتر از اون حرفی بزنه مرد نابینا گفت زن بیشتر از این گریه نکن تنها من که کور نیستم در این دنیا آدمای کور زیادن همه ی اونا میتونن بدون چشم زندگی کنند. چون تعداد افراد خانواده اونا زیاد بود خیلی زود همه آردها مصرف شد اون مرد نابینا یه روز به زنش گفت من دیگه نمیتونم پیش برادرم برم تو باید منو از ده خارج کنی و کنار جاده زیر درختی ببری و هر روز منو همونجا بذاری و شبا برگردی به منزل تا هر کسی که از اونجا رد میشه ازش یه تیکه نون بگیرم زنش او زیر درختی برد و خودش به خونه برگشت تمام روز مرد فقیر اونجا نشست یکی از آبرین یه قطع نان بهش داد شب شد زنش دیر کرد و او رو به کلبه بر نگردوند مرد نابینا خسته شده بود. ناچار تنها حرکت کرد اما راه رو اشتباه کرد و نتونست به خونش برگرده. بدون اینکه بدون کجا میره خیلی راه رفت. ناگاه خود رو در برابر جنگلی دید. ناچار شد شب رو در جنگل بمونه و از ترس حیوانای درنده بالای درختی رفت و روی شاخه ها دراز کشید. نیمه شب ارواح شیطان به همراه رئیس خودشون به زیر درخت رسیدند. رئیس از یکایی یک که اونا میپرسید پرسید که چه چیزهایی انجام دادند؟ یکی از اونا گفت که من شنیدم مردی برای دو تا ظرف آرد دو تا چشم برادرش رو از کاسه در آورده. رئیسشون گفت البته کار خوبی کردی که این خبر رو به دست آوردی ولی این خبر کافی نیست. پس چه چیزی رو فراموش کردم؟ اگه این مرد کور چشماش رو با شب نمی که زیر این درخته خیس می کرد بینای خودش رو به دست می آورد. چه کسی از این جریان خبر داره و چه کسی میدونه که باید این کارو بکنه بعد رو به دیگری کرد و گفت تو چه کار کردی من آب چاه یکی از روسته ها رو خوش کردم حتی یه قطره هم آب در اون باقی نگذاشتم و آب اونو تا پنج فرسخت دورتر از اینجا انتقال دادم به این ترتیب افراد زیادی از تشنگی میمیرن کار خوبی کردی اما کاری تو کافی نیست خب یعنی چه چیزی رو فراموش کردم در یه شهر که زیاد از اینجا دور نیست، سنگی دیده میشه که اگه کسی اونو جابجا جا کنه، از زیر اون آب بیرون میزنه و تا ده جریان پیدا میکنه. چه کسی از این جریان خبر داره؟ چه کسی میدونه که باید این کارو کرد؟ سپس رو به سومی و گفت تو چه کار کردی؟ در یکی از شهرها حاکم شهر دختری داره. من این دختر دخترو کور کردم و کسی نمیتونه او رو معالجه کنه. کار خوبی کردی اما کار تو کافی نیست. یعنی چه چیزی رو فراموش کردم اگه این دختر کور چشماش رو با شبنمی که زیر این درخت ریخته خیس کنه بینایی خودشو به دست میاره چه کسی از این موضوع خبر داره و چه کسی میدونه باید این کارو بکنه مرد کور که در بالای درخت بود همه حرفای اونا رو شنید و به خاطر سپرد موقعی که اونا رفتند مرد کور از درخت پایین اومد و چشمهاش رو با شبنم مالش داد و بلافاصله فاصله بیناییش رو به دست آورد بعد با خودش فکر کرد که باید به دیگران کمک کنه بنابراین کمی شبنم برداشت و حرکت کرد پس از مدتی به روستایی رسید که آب نداشت پیرزنی رو دید که سطری رو با خود حمل میکرد بهش سلام کرد و پرسید مادر بزرگ میتونی کمی آب به من بدی تا بخورم؟ پیرزن جواب داد. افسوس من باید این آب رو تا پنج فرسخ با خودم حمل کنم و قبل از رسیدن به خونه بدون شک نصفش خواهد ریخت. افراد فامیل ما زیادند. اگه آب بهشون نرسونم همگی از تشنگی می میرند. موقعی که به ده شما رسیدم به همه افراد آب خواهم داد. پیرزن کمی آب داد. اون وقت با خوشحالی برگشت به ده و اونجورو که شنیده بود برای دیگران گفت. مردم حرف پیرزن باور نمیکردند. ناچار پیش اون مرد رفتند و گفتند مرد شجاع باید ما را از تشنگی نجات بدی. مرد جواب داد: بله موافقم اما شما هم باید منو کمک کنید و وقتی میخواید به شهر برید منو هم با خودتون ببرید. او را به شهر بردند. او خیلی کوشش کرد تا اون سنگ رو پیدا کنه و همگی در اونجا جمع شدند، سنگ را بلند کردند و در صدت بر اومدن که اونا حرکت بدند بالاخره موفق شدند. به محض اینکه سنگ تکون خورد، آب جاری شد و با سر و صدای عجیبی به راه افتاد. ها و ها پر از آب شدند. اهالی شهر خوشحال شدند و از اون مرد تشکر کردند. پولهای زیادی بهش بخشیدند. بعد سوار اسبش شد و حرکت کرد و همه جا نشانی ای رو که به شهر حاکم ختم شد از مردم می پرسید. مدتی راه رفت تا به اون شهر رسید. وقتی در برابر قصر قرار گرفت، از مستخدمی سوال کرد: من شنیدم که دختر حاکم شما مریزه. شاید من بتونم معالجش کنم مستخدم جواب داد چه ادعای عجیبی پزشکان مشهور نتونستن او رو معالجه کنن بهتر از اینجا بری بعد مستخدم تلاش کرد که او رو دور کنه اما مرد پافشاری فشاری کرد و گفت برو و حاکم شهر رو خبر کن بالاخره مستخدم راضی شد و حاکم شهر هم او رو در قصر خودش پذیرفت و پرسید میتونی دخترم رو معالجه کنی؟ مرد فورا جواب داد بله میتونم. حاکم شهر گفت: «اگه مالجش کنی هرچه چه انجام خواهم داد. او را به اتاقی آوردند که دختر حاکم در اونجا دراز کشیده بود. مرد چشم رو را با شبنم خیز کرد و به این ترتیب دختر زیبا بینایی خودش رو باز یافت. حاکم به قدری خوشحال شد که قابل وصف نبود و اینقدر چیزهای قیمتی بهش بخشید که اون مجبور شد همه اونا را با گاری حمل کنه. در این مدت زنش آهوزاری میکرد و به کلی ناامید شده بود و نمیدونست که شوهرش کجا رفته. فکر میکرد که شاید مرده. ناگهان شوهرش جلوی منزل اومد و پنجره رو به صدا دروارد و گفت خانم درو باز کن. زن با خوشحالی صدای شوهرش رو شناخت و جلو دوید تا دست شوهر رو بگیر و وارد خونه کنه. چون تصور میکرد که شوهرش هنوز کوره و جایی رو نمی بینه. او دستور داد آتشی روشن کنند. زن هم آتشی برپا کرد و در برابر شعله آتش صورتش رو نگاه کرد و خیلی خوشحال شد چون متوجه شد که شوهرش بینایی خودش رو یافته و خدا رو شکش کرد و گفت چطور چنین چیزی ممکنه؟ بعد شوهرش تمام جریان رو گفت و همه چیزهایی رو که با خودش آورده بود به خانم داد و گفت اینها رو در جای امنی بگذار. و با ثروت و راحتی زیاد به زندگی خودشون ادامه دادند اما برادر ثروتمند وقتی جریان رو شنید بلافاصله خودش رو به اونجا رسوند و پرسید راستی برادر چطور بینایی تو به دست آوردی چطور این همه ثروت فراهم کردی برادر تمام جریانات رو گفت و اون چرا که به سرش اومده بود براش تعریف کرد برادر ثروتمند به طمع افتاد که باز هم ثروت خودش رو زیاد کنه موقعی که شب شد آروم و بی صدا وارد جنگل شد و بالای همون درختی رفت که در نیمه های شب ارواح شیطان با رئیس خودشون از راه رسیده بودند اونا اومدن و گفتند: چرا چنین اتفاقی افتاده؟ کسی نباید حرفهای ما را بشنوه و به صحبت ما پی ببره. اون مرد کور بینایی خودش را به دست آورده و آب به جریان افتاده و دختر پادشاه هم نجات پیدا کرده شاید باز هم کسی در اینجا باشه که حرفهای ما رو گوشه؟ همه جا رو بگردید بعد به جستجو پرداختند و بالای اون درخت رفتند ناگهان با برادر سربتمند روبرو شدند اما بهش حمله کردند و پار پارش کردند و اون مرد تمکار رو از بین بردند